چرا استاده ای؟ چیزی شده؟ فکر میکنم ماشین پنچر است چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم بله ماشین پنچر است الان لاستیک را عوض میکنه اما من وقت ندارم با یک تاکسی دیگر میروم من برای شما یک تاکسی میگیرم ببخشید که ماشین پنچر شد نه نه خواهش میکنم من خودم دیر کردم